دراز و وا و خانه چطور است؟ فهارو به طرف قبله دراز نکنه اشکال نداره چونکه که فا به طرف قبله واجائب کنی اول این است که الله میفرماید تو من یعزین شعائر الله فئنها تقوى القلوب تعظیم شعائر الهی از تقوای قلوب ا شعائرشان الله رب العالمین در شعائره ذکر می کنند مشعل الحرام را میدان مزدلفه را مناره عرفات را بیت الله دو شاعر هستند فتعظیم شاعر شاعر الله تو است کسی تعظیم نمیکنه تا غوا و خلاف عدل هست و علت دوم این است که فا دراز کردن جائز نیست حدیث داریم که نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر کسی رو به قبله عابد هاشو بی انداز توف میکنه روز قیامت این عابد رو پیشانیش میچسد اینا خیلی بی اعتراض هر درسی رو میاندازن این دیگه خیلی است